انان بزرگی هر کس که جست نخستش ببایت به خون دست چست که یا خود کشد یا کشندش به درد خوجسته کسی کو بزرگی نکرد خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز راژیو فرهنگ شهادت امام جعفر صادق علیه سلام رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم مثل هر یک شنبه شب آقای دکتر فیدون جنیدی کارشناس عزیز این شب‌های ما در خدمتشون هستیم و یه مطلبی هست سلام استاد حال شما خود شما, حال شما. لباس سرطا پاسفید بوشیدید این خیلی توجه من رو کرد اونجا پرسیدم شما گفتید که الان به من بفرماید در خلال آین شش ساله مهرگان هستیم و دیروز آین, آین روز در بانجادنشو برگزار کردیم در بسیار جاهای که برگزار شده و همونطور که نوروز شش روز ادامه داشته تا نوروز بزرگ مهرگان هم مهرگان و بزرگ داره تا رو و این در حقیقت بزرگترین آین ملی ایرانیانه که با یک همداد شگفت ازنده صدها ساله دست به دست هم دادند تا با پیدا کردن نیروی روان و نیروی تن هر دو با هم بتونن که بر یک دشمن هزار ساله ایران یعنی بیورسب یا زحاک یا در حقیقت حکومت بابل پیروز بشن این پیروزی یک پیروزی ملی بزرگ که همطور کرده با یک همداد شگفت شگفتی آفرین همراه بود و صدها سال به دنازه کشید تا بالاخره به پیروزی رسید. لباس سفید؟ لباس سفید لباس ایرانیانه در این آین ها لباس سفید بوشن واسه سپید یک ویژهی برترم داره اون که اگر اندکی آلودگی بر اون باشه فورا خود چشون میده هم هم جسم و جانت هم جانت هم, هم, هم جسم، جسمت هم جسمت هم پوششتله این تو هاکو بیا آلاش پوه این ب اون واژه یک بار من در این برنامه ها گفتم حالا تکرار میکنم اینکه واژه عروس که الان با این نمیشه میشه و گمان برده میشه که واجه تازی هست اما نه با این عربی نیست و تحریص و معارض و محترس و در عربی نداریم این واجه فارسی از ریشه عرز, عرز عرزتایی گرفته شده عرز یا عرزه سه معنا داره در عرزتا یکی سپید یکی پاک یکی زیبا و عروس کسیست که هم جامعه سپید داشته باشه هم پاک باشه دلش جانش روانش پاک باشه و همکه تنش دیبا باشه این واجه عروس این منیر داره و البته من چند سال پیش دیدم در یک از خبانه تیران که عروس لباس نمیشتن که جامعه عروس با علف نمیشتن این نشون میده که مردم کم کم دارن این ریشه ها رو در میابن در باره میرگان با گفتار فراوان باشه من فکرم که موقع کنیم به هفته آینده من میگم اگر چیز نیست در مورد این آین امشب حالا میخوایم اگر موافق باشید یک. چون ما قولی هم دادیم الان یادم افتاد یه قولی هم شنوندگان عزیز دادیم دو ورنان پیش بود دو برنامه پیش بود که در مورد این آین صحبت کنیم اگر موافق باشید آقای دکتر فریدون جنیدی یه بخشی در مورد آینه مهرگان صحبت کنیم بعد ادامه داستان رستم و سهراب رو داشته باشیم من در همین آغاز اول تلفن‌های برنامه رو یواش بخونم که نمره خوبم بگیرم که چون با دوستانم صحبت کردم گفتن هیچ وقت استاد بکسی 20 نمیده نه من بیش میدم من تو دلیل داره ویدل گفتم 20 که امشب باید مصاحبه کنم 20 بگیر. از شما می‌پرسم جان ده مخ کجای آسمونه امشب ما ام, ام بیست و هشتومه ماه و هشتوم نیست این یه ده. نمره کم خب نوزده حالا کجای آسمونه ما ما من این این ور دیدم نخیر خلاف خلاص رسیده اولا شما این ور کسی که در رادیو را این بلد. بلد. در در اون که با دستشاره میکنیم با البرز طرف طرف شماله نه، این, این طرف تو... طرف شماله تو... طرف با دیگه کنم <تصفح> right. همین اکنون که من و شما با هم گفت, و گفت و میکنیم ماه به صورت یه حلال پررنگتر در شرق آمریکا دیده میشه روز اگر شما خواسته باشید که این پدیده زیبای جهان آفرین رو که هدیه کرده به زمینیان ببینید فردا حدود ساعته هشت و اون کنید به طرف شرق اون وقت محروض اکنون در امریکا دیده میشه آره من ندیدم نموی کم نفتیم چند <تصفح> <تصفح> <تلفون> های برنامه <تصفح> 220 485 220 485 220 588 20 220 588 دو صفر و شماره پیامک ما سی هزار پانسد و پنجاه و هشت هست سی هزار پانصد و پنجا و هشت بعضی از دوستان گفتند در شهرستان ما میخوایم برنامه شما را بشنویم موجش رو بفرمایید اامپانصد و پنجاو هشت موج م پانصد و پنجاه و هشت پایگاه اطلاعرسانی ما آدرس اینترنتی ما دبلیوابلوابلودات دبلیو دبلیو رادیو فرهنگ دات آی آر هست. پس ما در برنامه امشب یک بخشی میپردازیم به آیین مهرگان با توجه به مطلبی که استاد فرمودن به احترام شما منتها در هفته آینده مفصلا به این آین خواهیم پرداخت. بعد در ادامه برنامه ادامه داستان رستم و سخراب رو استاد پی خواهند گرفت. جادو جادوی عجیده هاک زه هاک بیگرست جادوی کاهنان بابلی که درمان درد توران دو آتش رو در دو سوی کشور یکی دمواند و یکی البور در نزدیکی مرز گذرستان امروز کنها همه ایران بود و اکنونم عنوان ایران فرهنگی باید از این فیاد بکنیم درمان درد این تو آتفشان رو کشتن جوانان ایرانی می دونستند و به دنبال این کشتن سختار و غارت می <تصفيق> <تصفيق> می فرماید ما این ض شما نه می سخن از سیستم زهها و من پریشان میشم و جوانانی که جوانانی که هزار سال جان شوینشون هر روز از دست میدادن پوشت سر هم درمان رو در این میدیدند که جوانانی را نجر بسوزن در یه ساختمانی در گنج دره کرماشان که سابقه در هزار سالی سفال داره چهار هزار سال چهار و سال پیشتر از سفال نیل و میارودان پایان کار این دره یعنی این مجموعه زندگانی 7000 سال پیش با یک سختار یعنی آتیستوزی سخت گسترده که روی تپرفره گرفته بود و با پیکرهایی که در این آتیستوزی سوختند پدیدا شد این متعلق به ستم زحاک یا بیورست یا بابلیانه که در شاهنامه اومده که ندانست خود جز بدا به جز قارت و کشتن و سوختن درست نبادش در کنج در جای هر سین کرماشان پیداست البته در تپه چقامیش هم همین در سر هفتزار سال باز ما همین کوشتار و سختار رو بینیم. و اگر کاشای باسترشانسی ادامه پیدا کند در تمام اون جای دست بابلیان رسید بینیم که خواهیم دید که در همون هفتزار سال همه جا همین کوشتار و سختار بوده و آین اونایی بود که مردان رو باید در برابر اجده ها یا آتش قربانی بکنند و هنگامی که مردان تقریبا جمعیت مردان رو به کمی میگذاشت و وقت پسران برای این کار استفاده می‌کردند. آو این و این خوی و این روش یک هزار سال ساویه یک ابر سیاه تیره پر از وحشت و اضطراب رو بر دهشت گسترده ایران بر دل جان ایرانیان انداخته بود مادران ایرانی که از اونها با نام فرانک یاد میشه فرزندان رو به کوهستان ها وردم و سپردن به کسانی که وابسته بودند شاهنامه اشاره میکند که یکی مرد دینی بر کوه بود که از کار گیتی بیاندوه بود فرزندان در کوهستان به دو شیوه آموزش میدیدند یکی آموزش تن برای ورزش و نیرومندی و در نهایت برای مبارزه با دشمن یکی آموزش روان برای پاکی و جان که لازمه اون پیوند و اون اتحاد بود این دژههایی هایی که برفراز که های ایران هست که من نمیدونم هفته پیش دو هفته پیش گفتم باز الان به مناسبت مهرگان تکرار میکنم ما میبینیم از قلعه بابک و بعد حسن سبا و بعد که قلعه دختر میگن یا در آزرباویجان گرامی قید میگن اینا همه یادگار دوران ستم زحاکه یعنی زمانی که فرهنگ سنگ بوده به هنوز فلز پیدا نشده فلز با کابه پیدا میشه همین دشه های سنگین بر فراز کوه که در حقیقت پادره یعنی دفاع از نام بسیار بسیار آسان بود برای که سخت گذر بودند و سپاه نمیتونست اونجا بره و کافی بود که دو نفر اون بالا بیستند هم بوهی از سنگ در دستشون باشه اینا رو بغلطونن رو سپاه بنابراین در اون کوهستان ها این پناخ گرفته بودند و از شهر دشمنی که میخواد اونا رو هر روز بکشه و هر زمان بکشه نجات دادن خودشون رو اما در اینجا چون جا تنگ بود الان شما ببینید جا در این قده ها اگر رفته باشید خندب جا خندب. تنگه ام. چون جا تنگ بود برای ورزش جای بزرگی نداشتن ناچاری جای خیلی کوچکی رو برای ورزش ویژه میکردن و همینی که هنوز در زخونه ها ایران هست یعنی با همین شکل با همین شکل در این کوچک ببینید شما اصلا زخونه بزرگ نمی‌بینید در همه زرخون ها کچیکی برای یک گودی برای یه جای تنگ و چون همه باید این در اینجا ورزش بکنند بنابراین ملتبا هیت تکرار می و گروه های تازه می مدن. و در همه زرخون های امروز هم اون کسی که سردمدار هست که بهش حالا فیلن موشد هم بگن اون سردمدار هم که وقتی بخواد خودش ورزش بکنه مثلا دو بار سه بار وقتی که سردم داری کرد و ضرب رو زد به خود خودش ورزش بکنه کسی دیگه است که بیاد ضرب رو بگیره و سردم داری کنه و این در یکی از این پوستت ها بتونه ورزش بکنه و این ورزشگاه مرتب هم پر و خالی می شد و این آین شیشیزار ساله شش شیشیزار اندی چون پیش از پیروزی بوده هنوز باقی مونده و شریفت اینه که مینیکی زرخونه یه اون بالا زدن دو طرفه برای اینکه کسی که وارد میشه حتماً اینجا خم بشه از اینجا خم بشه این زنجیر با که با خوضو با اتفاق با اتفاق وارده اونجا شد برای که اینجا همش بایاد یرزان بوده و اینا تن پاک با همراه با روان و پاک برای نجات ایران گرامی به هاست هاستال ما آغاز ورزش ها رو نمیتونیم. یعنی الان بگیم ولی خب بالاخره مسلمان پیشتر از 6000 سال که پیروزی فریدون بر زهاکست این فردش ادامه داشته حالا اگر شما این خوشبختی داشته باشید که شبانگاهی در کوهستان زندگی کرده باشید میدونید که یکی از زیباترین منظره هایی که خدای جان آفرین و جهان آفرین برای مردم داده سپیده یه همطور انواج خاکستری سیاه خاکستری کم کم روشنتر تر میپیشه برفراز و کو همطور موج میزنه در راه اول دیده نمیشه اون سفیدی دیده میشه یعنی مثل یک ابر در حال که عبر نیست بعد کم کم کم کم نور بیشتر میشه نور بیشتر میشه روشن میکنه این منظره زیبایی باشکوه همواره مردم ذره دانسپار ما بود که بلندشن زود زودتر تا این منظره زیبایی که خداوند برای جهانیان آفرید اون رو به چشم ببینند و به اون تو بگن و به اون نیایش بکنند این بود که نماد گیتیایی کیش مهر که پدید می اومد در حقیقت سفید دم بود اما چون زندگی بعد با راستی و پاکی تو باشه نماد مینووی اون یعنی معنوی اون معنوی از مینوی فارسی گرفته شده نماد مینووی اون پاکی و راستی بود و در این زمان بود که یک کیشی پدید اومد به نام کیش مهر که روشنایی و راستی و پاکی رو با همدیگه آمیخت و ایرانیان با این کیش بر دشمن یک هزار ساله خودشون پیروز شدند خب این پیروزی خیلی باشکوه بود این درسی برارندگان ملتی که هزار سال تحت شکنجه و آزار دشمن باشه و مرتبا جوانان اون رو بکشند رو زنده زنده در برابر اجده ها به خاک بیندازند خب حالا میبینند که ممکن هست که دوران ستم رو تحمل کرد و پیروز شد این, این درسی از هزاره های باستان پیروزی, پیروزی سبر صبر و با, با نیرو و با پاکی و با راستی و با برنامه یعنی با یه آمادگی با آمادگی پیشین بله. بله. خب فریدون یعنی دوران سفر شدن امریکا ایرانیان فراهم آمد از بین رفت ایران به دست ایرانیان افتاد و با کیش مهر کیش مهر در خب مسلمه که نمادش جشنش در روز مهر از ماه مهر بر باشه که مهرگان میشه در اون باستان هر روز یک نامی داشته که اگر نام روز با ماه برابر میشد، اون رو جشن میگسم س فض و فریز که روز دوم که بهمن بوده در ماه بهمن میشد بهمنگان این رو جشن میگردد یا روز روزاسفندزگان که روز بزرگ داشت زن در جهان و زمین و زن در جهان هست روز پنجم اسفند باستانی بوده همین تحبیل روز شونده همه ماه میر میشد که مهرگان جشن بزرگ ملی ایرانه من ممکنه که در برنامه آینده بیشتر توضیح بدم جشن نروز ما همهگان فعلا تصابق مکنی که جشن ملیه اما اون جشن بزرگ داشته دانش ریاضی و اخترماریه خیلی خیلی مهمه که ما کی به این دانش دست پیدا کردیم من این رو خواهم گفت شفت انگیزه برای همه ایرانیان و برای همه جهانیان که ما چند هزار سال پیش این دانش رو پیدا کردیم که بتونیم که جشن روز نوروز رو, رو پیدا کنیم این جشن بزرگ داشت ریاضی به اخثر ماریض این زنده شدنبلله نور و زنده شدن دوباره زمین با همه اما در ملگاه جشن ملیه م. یعنی یعنی پیروزی بر دشمن با پاکی و راستی و پیمان همدلی بازو در بازو اندیشه با اندیشه جان همراه جان جان فشان در راه ایران بالاخره سفید دم پیروزی از دور خودشو نشان خواهد داد این مفهوم جشن می‌ریگانه که آیین هستش این لباس سفید با. با. من بلا های فیض شما باشه بله من با سپاس از شما و دست اندرکاران محترم این برنامه از استاد خیرمند خواهش میکنم البته این حالا سوالات متنوعی که الان هست من در مورد اقوام سکایی یا سکها صحبت بفرمایید افسانه از بروجرد درست درود با افسانه شکر سکایی یا سکه اینان نام سکاییان که بودن که مرکزشون سیستانه منطقه این سیستان وقتی ما دانش آموز بودیم می که انبار قله ایرانه و خب این جایی که این همه در حقیقت گندم داشت و بعد اون دریاچه که پر آب بودند و به این ترتیب که متاسفانه امروز خشک میشن شن به این ترتیب نبود و قوی آسمان اونجا پرواز میکردند میمدند پر قوی مرتبا از سیستان به همه جا میرفت و یک درخشش زندگی همراه با کشاورزی و نعمت فراوان همواره اینجا پر از جمعیت میشد و این جمعیت میبایستی که به جاهای مهاجرت کردن که بتونن زندگی نو پاتدیرا کما اینکه در همین 40 سال پیش سیستانیان کوچ کردند به خراسان و بیشتر به گرگان و در گرگان با همت والای خودشون چون کشتارهای پنبه گرگان رو یعنی پرستاری میکردن و پنبه ایران رو تأمین میکردن اما دریقا دردار که پمبه مزاره پنبه رو تبدیل کردن به مزاره گندم و سیستانیان هم اون هنر والای کشاورزی خودشون کنار نهادن هر کسی به یک کار دیگه پرداخت اگر ما در همین زمان نزدیک می بینیم که سیستانیان اینطور محاجرات کردن پس در زمانهای دور هم به هنگام مثلا خوشتالی ها یا اینکه زیاد شدن جمعیت به پیرامون جهان مسافرت می کردن تحت عنوان سکا و حتی ما مثلا تحت عنوان سید داریم در بین دو دریای مازندران و سیاه بعد گروه از اینا رفتن به شمال شرق چین که چینی‌ها و اونا دو چه های شرقی نام نهادن این دوچه ها در مرور زمان اومدن کم کم رفتن به طرف اروپا و دویچ و دویشلند یعنی آلمان رو پدید بردن شما می بینید که مثلا اسکاندیناوی سکه هست و بعد ساکسون انگلوس ساکسون می بینید بخشی از اینا سکه هستن کرفتن اونجا رفتن اونجا و اتفاقاً مهرابه های این گروه های مهاجر در ایرلند اینها پیدا شده این در حقیقت یک استان زرخیز بزرگ پر از نعمت بود که کم کم مهاجر میخواست با اطراف جهان و بخش عظیمی از اروپایان سخو هستن و خودشون نمیذارن یعنی اگر هم بدونن تجاهل میکنن برای که اونا نمیخوان خودشون رو اجازهشون رو به ایران برسونن و تمام تلاششون اینه که به یونان برسن خودشون رو. اما قافل از اینکه هستن که یونان هم بالاخره به ایران میرسه حالا من در آنه موقعی وقتی که لازم باشه برای شما خواهم گفت که یونانیان خودشون میدونن که 2800 سال پیش اونجا اومدن و سکنا گذاری اما نمیدونن از کجا آمدن این شاهنامه ما معین میکنه که از کجا اومدن اقوام سکا در سر تا ساستر پارسای آسیایی پراکنده شد بله درود بر استاد جنیدی و آقای هدایتی در مهرگان در جشن برداشت محصول آین برداشت محصول ببخشید این بد نوشته شده من نمیتونم بخونم از روی آین برداشته محصول مصادف با آین مهرگان است آیا منا... به خاطر این مناسبت هم بوده این آین؟ نزید من در اند آینده مفصلن تنی برسوار بکنم درود... با درود بر استاد بزرگ و مجری محترم آیا درود آین خوب نوشته درست است که بعد از آین مهرگان دوم یک روباه را در ارتفاعات, ارتفاعات کوه آتش میزدند با سپاس فراوان از استاد بزرگ و مجری محترم برنامه میسم از کاسپیان به درود بر شما و درود به دریای کاسپین این کار آزار جانوران بوده در اندیشه ایرانی گناه به شما میرفته اما ما در نظر داریم در داستان مثلا در تاریخ قیقه هست که در جشن سده پرندگان رو آتش میزدن و آسمون میفرستند و پادشاهان ایرانی غزنوی از این کار لذت میبردند نه در ایران آزار جاندار که جانی که از طرف یزدان ودی و شده به هیچ روی شایسته نبوده بله و یه پیامتی دیگه اینجا هست من راننده کامیون هستم و علاقه زیادی به آین, آین های قدیمی دارم چه کتابی را برای مطالعه آنها پیشنهاد می‌کنید. با تشکر وحید محمدی درود بر شما امیدوارم همین اکنون در دشت ایران در حال رانندگی باشین حال و هوایی هم راننده در من کتابی خودم نوشتم در این زمینه هست به نام زروان سنجش زمان در ایران و باستان توصیح میکنم که به خودم کتابای دیگه هم هست اما خب این کتاب رو خودم نوشتم زروان سنجش زمان در ایران و باستان از بنیاد نشابور میتونین تحییب کنیم یه سوالی هم داشتیم هفته پی شما مثل که قرار بود بفرمایید در مورد همین زروان بود اگر اشتباه نکنم که چه هست و چه بوده و داستانش رو بفرمایم خب من این نام این کتاب رو زروان کداشتم در برای زروانم در آینده صباح خواهی کرد باش ما سلام علیکم دوستان ما <تصفيق> میاز اراغی کنند ما تلفون های برنامه رو ختمتون ارزم کنم 222-485 222-582-820 222-582-820 و شماره پیامک 3558 3550. این دوستان ما که میان صدا داره جدید ما تازه اومدن آی حسینی عزیز و و حالا مو ما موسیقی رو میشنویم در خدمتون هستیم یه خود حواسم پرت شد من استاد نمره کم نکنیم نمبره حواستون ما موسیقی میشنویم در خدمتون هستیم استاد بیاد داشته باشید که افراسیاب از صحراب و نیرو و آگاه شد و سردار تورانی بارمان و هومان رو فرستاد برای یاری و گفت اگر جنگ جویی تو جنگ آورند دنباله داستان چه این است که به سهراب آگاهی آمد ز زهومان و از بارمان و سپاه جهانجوش نامه شاه خواند از آن جاگه تیز لشکر براند دژی بود کش خون سپید بدون دژ بود ایرانیان را امید شو سهراب نزدیک آن دژ رسید هجیر دلاور سفح را بدید حجیر در بسیار از نقطه حجیر اومده ولی به صورت هم میتونه باشه حجیر هوشیار و آگاه این واژه به صورت ژیر در زبان کردی باقی مونده به صورت حجیر در ادبیات باقی مونده به صورت در زبان خراسان هست به خصوص کسی که از خواب بیدار بشه به خود شده کن بده و هوشیار بشه بهش میگن اجیر خوب یعنی کسی که از خواب بیدار شد و هوشیار شد وقتی این جیر به صورت به صورت ز در اومده در واجه زی زیرک خود چونشون میده زیر جیر، زیرک و این زیرک خوشبختانه در آزربایجان همطور طور شد زیرک ده کاملا یه نی خیلی خفیفی بین که و در حقیقت ره قرار میگیره که در آذربایجان شنیده میشه این در بقیه جه ایران اون نه خود آشکار کرده شده زرنگ خب هجیر یعنی زرنگ زرنگ بله ام... چون صحرا نزدیک آن رسید هجیر دلاور سفه را بدید نشست از بر پایی چون درد زده رفت پویان به دشت نبرد چون صحرا جنگآور جنگ را بدید برای شفت و برکشید بکشید لشکر برون تاخت برسانه شعر به پیش حجیر اندر آمد به چون این گفت با از میده حجیر که تنها به جنگ آمدی خیر خیر خیر خیر یعنی بیهوده خیره یعنی بیهوده ما امروز خیره به کسی که خیره نگاه میکنه میگیم اطلاب اما نه خیره یعنی بعدی معمولا میگن چه؟ اجبار میگن بچه میگم یه می خیره نشو اینه چه بسیار بچه خیلی یه سی خیلی این بیهوش خورده بیهوش بله چه مردی جناب من جا دوتو چیست که جا ویnder او برتو باید گریست حجیرشون این داد پاسخ که بس به جنگت نباید ما را یار کش حجیره دلیره سفه منم سرت را هم مکنم زدم برکنم بخندید سهراب زان گفت اوی به آورد او تیز بنهاد رو یکی نیزه زد بر میانش هجیر نیامد سنان اندرو جایگیر سنان باز پس کرد سهراب شیر بونه نیزه زد برمیانه دلیر متوید شدین هجیر نیزه رو زد به میان یعنی به کمرگاه سهراب و کارگر نشد و سهراب همون نیزه گرفت برگردوند با بونه به میان حجیر نیرو چی بوده دیگه با یک قدسنی بقید بپیچید و برگشت دست راست قمین شد سهراب و زنها رو خواست به دجدرش آگه شدند از هجیر که او را گرفتند و بردند از سیر زنی بود برسان و گردی سوار همیشه به درون نامدار کجا نام او بود گردافرید که چون او نی آمد مادر پدید چون ننگش آمد کار هجیر که شد لال برگش به کردار غیر لال برگ یعنی چهرش شهره همرنگ لالش به کردار غیر شد نهان کرد بیسو به زیر زره برفکند بند زره را گره به پیش سپاه در آمد چون گرد چون رعد خروشان یکی ویله کرد که گردان کدامند و سالار کیست ز گنداوران جنگ را یار کیست چه سهراب شیر را بدید بخندید و لب را به دندان گزید چنین گفت کامد دگرباره گور به دام خداوند شمشیر و زور یعنی خود سهراب که دارنده خداوند این دارنده دارنده شمشیر و زور بیامد دمان پیش و گرد آفرید چو دخت کمندفکن را بدید سر نیزه را سول سغراب کرد، انام و سنام را پرستاب کرد. این مفهوم داره یعنی که عصب رو مرتبا به چپ و راست هدایت میکرد. علت این بود که وقتی که همه با نیزه با حمله میکنه، در یک راستا نباشه که او بتونه میان یعنی کمروند او رو نشونه بگیره و بزنه. اگر به طرف چپ و راست حرکت بکنه، جایگاه او کمر یا کمربند او در حقیقت حرکت میکنه و کار رو بر همه سختتر میکنه سنان راپول از تاکر سر نزید به طرف چپ و راست و انان اصلا به طرف چپ و راست میپیشید ملتب برای شو سهراب شد چون پلنگ چون باید خواهب چارگر بود به جنگ به همین داره میگه یعنی میبینی که به طرف چپ و راست داره, داره چارگری میکنه اگر نه مستقیم باید میومد دو تا نیزه بر باید مستقیم بیاد منطقه خب این این کاری کرده و دید که بدخواه این دشمنش در جنگ چارجوی میکنه. چون پلنگ برا شفت. بزد نیزه او بدون این کرد نشست از براعص و برخواست کرد. برای اینکه که نیزه بزنه ببینید سهراب با اسب مدود میدازی. بچه رو میگه نشست از براعصب. برای که نیزش کارگر بشه با پا بلند شد تا ایستاده بتونه نیزه بزنه. در حالو که منیزه باشه تا به سر طرف میانبندی میاد این باید به قدری زورمند و دقیق باشه که بلا فاصله بتونه این کار بکنه و برای این کار باید از رو عصب بلند شد یعنی روزه کار وقتی که زد وقتی مرتبه میتونه رو عصب بشینه زیبایی های گفتار فیضوسیست که همطور از کنا بهآورد با, با او بسنده نبود یعنی گرد آفرید فهمید که نمیتونه یعنی با او بجنگه بپیچید از او روی و برکشت زود بركاشت یعنی برگردند راهاشو زبند زره موی او درفشان چو خورشید شد روی او بدان سهراب کو دختر سر و موی او از در افسر است از در یعنی شایسته یعنی این سرموی شایسته این هست که تاج ملکی کشور رو سرش بذارن. شگفت آمدش گفته زیران سپاه چنین به صورتی میخونم که در همه شانومه های امروز در جهان اومده ولی بعد درستش میکنم لا. چون این دختر آوید با ورگاه سواران جنگی به روز نبرد چگونه به عبرندر آراند گرد این در بیت اول اینه که شگفت آمادش گفت از ایران سپ اگر میخواد یعنی اگر دخترانشون این هستن نه مردمانچ و شگفت این است که این اگر رو گفته ولی هیچ کس توجه نکرد در هیچ شاهنامه جهان به این توجه نشد. یعنی نوشته شده های جهان ها نه شانومه. در درشا فرروسی توجه شده. نه. حالا من میخونم تا شما ببینید فرروسی اگر رو کجا گفته؟ شگفت آمدش گفت از ایران سپاخ چنین دخت آرایت با آوردگاه سواران جنگی به روز نبرد همانا به حبرند الان کرد میبینید؟ ار عر یعنی اگر در اینجا آمده تو ار رو نمیسندگان سر دخت نمیشن شده دختر متوجه شدین یا نه؟ یا دومت ببگم؟ دومت ببفرمی برای که حواستون به سمسا نه نکبر نه نکبر در بیت اول یک اگر لازمه اینه اگرشون اگر دخترشون اینه پس سوارانشون چیسته این خوب؟ اگر رو در کلیش آنما های موجود جهان نداریم اما ده. فردوسی گفته به این ترتیب شریف تا آمدش گفت از ایران سپاه چنین دخت ارایت با آوردگاه آو هر یعنی اگر سواران جنگی به روزن ورد همان به حبرندر در کرد این ار اومده منطور نویسندگان ار یعنی اگر رو به دخت چسبونده شده دختر ها بتوجه شد خوب بله بله بکشاد پیچان کمند بیان داخت و آمد میانش ببند میانه یعنی کمگاه گروه فرید به دو گفت که از من رهایی مجوی چرا جنگ تو ای ماه روی نیامد به دامن به و تو گور زی چنگم رهایی نیابی مشور خودتو تو تکون نده که خواب بخوای خود نجات بدی فرار کنی تو بند من هستی بدانست کاویخت گردافرید گردافرید فهمید که دل در سهراب دل در گیسوی گردافرید آویخته آویخته نهین دل در کمند گیسوی گردافرید بسته بدانست کاویخت گردافرید، گردافرید دانست که او آویخته مهش آویخت یعنی همون آشخ دل... شده نه آویخ دل درگیزو دل... آویخت آه. دل درگیسو آویخت یعنی دل درگیسو آویخت دل درگیسو آویخت مران را جز از در درمان ندید بدون روی بن نود و گفته دلیر میان دلیران به کردار شعر دو لشکر نظاره بر این جنگ ما بر این گرز و شمشیر و آهنگ ما کنون من گشاده چون این روی و موی سپاه از تو گردد پر از گفت و کوی سپاه بله سپا... خوب نیست بله که با دختری او به دشت نبرد به دینستان برندر آورد کرد نهانی به بهتر بود خرب داشتن کار بهتر بود کنون لشکر و دجی به فرمان توست نباید بر این آشتی جنگ جست شرخصار بنمود سهراب راز خوشاب بخشاد اون ناب را خوشاب یعنی مروارد خوشاب یعنی دندوناش از روی دندوناش اون ناب یعنی لب سرخ رنگ باز کرد لب سهر اون ناب که امروز ما میگیم اناب لب انابی رو باز کرد گشود و دور در خوشابش از زیر پیدا شد دوباره میخونم چرخصار به مود سهراب را ز خوشاب بخشاد و ناب را به دو گفت که اکنون از این برمگرد که دیدی مرا روزگار نبرد به این باره دیش دلندر مبند که این نیست برتر ز عبر بلند انان را بپیچید پیچید گرد آفرید سمند سرفراز بردش کشید بخندید بسیار گردآفرید آفرید به باره برآمد سپه بنگرید چو سهراب را دید بر پشت زین چنین گفت که شاه توران و چین ترا بهتر آید که فرمان کنی روخ نامبر سوی توران کنی بهتره که برگردی نباشی بسیمند بازوی خیش خرت گاو نادان زه پهلوی خیش این که این که یعنی مسئله که حالا ما میگیم گاوی که از پهلو خودش بخوره درقب نادانی کرده چون خودشو ضعیف میکنه چنین گفت که امروز بیگاه گشت زه پیکارمان دست کوتاه گشت برارم به شبگیر از این باغر گرد که بینید به روزه نبرد